قصه های هزار یک شب شب بیستم چون نور الدین به پیش وزیر آمد، وزیر دختر به او سپرد و گفت امشب با زن خیش به کامرانی بگذران که بامداد به پیش ملک رویم نورالدین را ماجرا بدین گونه شد اما شمسدین چون از سفر بازگشت برادر را بر جای نیافت و از خادمان جویا شد خادمان گفتند روزی که تو با ملک رفتی نیز به قصد تفرج سوار گشته برفت و تا کنون باز نگشته شمسدین را خاطر پریشان گردید و به دوری برادر محزون شد و با خود گفت سبب مسافرت برادر جزی نبوده که من با او درشتی کردم و سخنان تلخ گفتم در حال برخاسته به پیش ملک رفت و او را از ماجرا بیاگاهانید ملک به اطراف کتابها نوشت و رسولان فرستاد، رسولان برفتند و بیخبر باز گشتند. شمسدین از برادر امید ببرید و خیشتن را ملامت میکرد و از سخنان بیخرانه خود پشیمان بود. پس از چندی شمسدین دختری از بازرگانان به زنی بخواست. اتفاقاً شبی که عروس را آوردند نوردین نیز، همان شب با دختر وزیر بسره به هجله اندر شد. هر دو زن به یک شب آبستن شدند. زن شمسدین دختری بزاد و زن نوردین پسری. بامداد روز عروسی وزیر بصره نوردین را پیش ملک برد. نوردین بس دلیر و خداوند جمال بود و زبان فسیح داشت. آستان ملک ببوسید، و این دو بیت برخاند رأی سلطان معظم شهریار دادگر در جهان از روشنایی هست خرشید دگر که چون خورشید روشن رای ملکارای او روشنایی گسترد بر شرق و غرب و بهر و بر پس ملک ایشان را گرامی بداشت و از وزیر پرسید این پسر کیست؟ وزیر گفت من را برادری به مصرندر وزیر بود خود در گذشته دو پسر دارد پسر بزرگش به جای وی به وزارت نشسته و پسر کهترش همین است که پیش من آمده من دختر خیش به عقد او در و او پسریست خوشیار و دانشمند و او را آغاز جوانی است اما مرا عمر به پایان رفته و تدبیر من کم شده و چشمم کمبین گشته. از ملک تمنا دارم که برادر زاده بر جای من نشاند. ملک تمنای وزیر به جا آورده سخنش را بپذیرفت و وزارت به نوردین سپرده خلعتی شایسته با اسب سواری خود به نوردین داد. آنگاه وزیر بصری و نورالدین زمین بوسیده از پیش ملک در قایت خرسندی و شادی بازگشتند. روز دیگر نورالدین پیش ملک رفته زمین ببوسید و گفت سپر جاه تو مرا دریافت زیر تیغ زمانه خونخار همچو آینه طبع من بزدود از پس آنکه بود بود پرزنگار ملک نوردین را بر مسند وزارت اجازت داد نوردین در مسند وزارت نشسته به کار مملکت و رعیت مشغول شد و ملک به سوی او نظاره میکرد. دانشمندی او ملک را سخت عجب آمد چون دیوان منقضی شد نوردین به خانه بازگشت و کارهای خیش با وزیر باز گفت و او را از تفقدات ملک آگاه ساخت و هر دو شادمان و خرسند بنشستند و به این ترتیب بگذشت تا زن نوردین پسری بزاد. نام او را حسن بدردین نهادند. همه روزه وزیر بصری به تربیت حسن پسر نوردین مشغول بود. نوردین به پیش ملک می رفت و شغل وزارت می گذارد و شبانه روز از ملک جدا نمی شد تا اینکه خواسته خاسته بیشمار اندوخت. کشتی کشتی متاع گران قیمت به جهت معامله به شهرها فرستاد و بسی زیا و اقار و بساطین بنا کرد چون پسرش حسن چهار ساله شد وزیر بصری درگذشت نورالدین به ماتم بنشست پس از هفت روز بقعهای بر خاک او ساخته خود به تربیت حسن پرداخت چون حسن به سن رشد رسید دانشمندی را به آموزگاری او بگماشت حسن قرآن بیاموخت خط بنوشت و از سایر دانشها نیز بهرهبر شد و روز به روز نیکویی و خوبیش فزونتر میشد چنانکه شاعر گوید نیکویی بر روی نیکویت همانا عاشق است که از نکورویان کند هر روز نیکوتر ترا روزی نوردین جامعه حریر و خز به حسن پوشانیده بر اسبی سوار کرد و پیش ملکش برد ملک چون حسن بدردین را بدید در حسن و جمالش حیران شد و به نوردین گفت هر روز این پسر را در پیشگاه حاضر کن نوردین زمین ببوسید و هر روز حسن را با خود پیش ملک می برد تا اینکه حسن پانزده ساله شد و نورالدین رنجور گردید. حسن را پیش خود خانده وسیعت بگذاشت و رسوم ریتداری و وزارتش آموخت. در آن حال نوردین را از برادر و وطن یاد آمده گریان شد و گفت ای پسر شمس نام برادری دارم که ام تو و به مصر اندر وزیر است من بر خلاف خواهش او از مصر به در آمدم اکنون تو خامه بردار و بدان سان که من گویم نامه بنویس پس حسن بدرالدین قلم و قرطاس گرفته آنچه که نورالدین میگفت او مینوشت تا اینکه تمامت ماجرای خیشتن از وصول بسره و وصلت وزیر و هر حکایت که روی داده بود یک یک باز گفت و حسن بنوشت آنگاه به حسن گفت وصیت من نیک نگاه دار هرگاه تو را حزنی روی دهد و غمی رسد به مصر رفته به ام خود بازگو که برادرت در قربت به آرزوی تو جان داد پس حسن وصیت‌نامه پیچید و به کیسه اندر محکم بدوخت و بر بازوی خیش ببست و بر احوال پدر همی گریست تا اینکه نورالدین درگذشت فریاد از خانگیان و کنیزکان بلند شد و ملک و سایر بزرگان و سپاهیان به ماتم نورالدین بنشستند و پس از سه روز به خاکش سپردند و حسن تا دو ماه به ماتمداری نشسته به پیش ملک نمی رفت. ملک وزارت به دیگری سپرد و فرمود که خانه نورالدین مهر کرده زیا و اقا و بساتین و اموالش را بگیرند وزیر نو با خادمان قستخانه نورالدین کرد که خانه را مهر کرده حسن را به قید دارند مملوکی از ممالیک وزیر نورالدین در میان ایشان بود بر خود هموار نکرد که پسر ولی نعمت او را به خاری بگیرند در حال پیش حسن بدرالدین بشتابید و دید که محزون نشسته است واقعه بر او بیان کرد حسن گفت فرصتی هست که به خانه رفته چیزی بردارم و آن را توشه قربت کنم مملوک گفت از مال درگذر و خود را نجات ده حسن بدرالدین چون سخن مملوک بشنید سر و روی خود را با دامن جامعه بپوشید و روان گشته تا به خارج شهر رسید در آنجا شنید که مردم به افسوس و حسرت با یکدیگر میگویند که ملک وزیر نور را به مهر کردن خانه وزیر نوردین و گرفتن حسن بدرالدین فرستاده چون سخنان ایشان بشنید راه بیابان پیش گرفت و نمیدانست به کدام سو رود تا اینکه راهش به گورستان افتاد. چون مقبره پدر بدید به بقع اندر شد. هنوز ننشسته بود که یک نفر یهودی از اهل بصره رسید گفت ای وزیر با تدبیر چرا به دینگونه پریشانی؟ حسن گفت، همین ساعت خفته بودم پدرم را به خواب دیدم که به سبب ترک زیارت مقبرش با من به خشم اندر است. من بسی ترسیدم، برخاسته به زیارت قبر وی آمدم و اکنون خواهم که یک کشتی از کشتیهای خود به هزار دینار زر به تو بفروشم و در احسان پدر صرف کنم. یهودی کیسه زر به در آورده هزار دینار بشمرد و گفت ای آقای من خطی بنویس و مهر کن حسن قلم گرفته بنوشت که نویسنده این خط حسن بدرالدین بفروخت به فلان یهودی یک کشتی از کشتیهای پدر خیش را به هزار دینار زر نقد و قبض سمن کرد پس یهودی خط گرفته برفت و حسن ملول نشسته بر احوال خیش همی گریست تا اینکه شب درآمد حسن در همانجا بخفت چون گورستان مکان جنیان بود جنیه معمنهای بدان بقعه بگذشت دید که بقعه از پرتو حسن بدرالدین روشن گشته جنیه را شگفت آمد و بر بلند شد افریطی را بدید بر او سلام کرد و گفت از کجا میآیی افریط گفت از شهر مصر میآیم جنیه گفت من از بصره آیم و پسری به گورستان خفته یافتم که در خوبی به جهانندر مانند ندارد. با من بیا به تماشای او برویم. پس هر دو به بقعه فرود آمدند و چشم بر جمال حسن بدردین دوختند. جنیه گفت من تا کنون پسری بدین زیبایی ندیدم. افریت گفت من هم آدمی به این خوبی ندیده بودم. ولی در مصر شمسدین وزیر را دختری است که به این پسر همیماند. ماند. ملک مصر او را خواستگاری کرد. وزیر گفت ای پادشاه از حکایت برادرم نوردین آگاه هستی که او از من به خشم روی بتافت و من نیز از روزی که مادر این دختر را زاده سوگند یاد کرده ام که جز پسر برادر به دیگری ندهم؟ چون ملک سخن وزیر بشنید در خشم شد و گفت من از مثل تویی دختر می و تو بهانه های خونک میاوری؟ به خدا سوگند دخترت را ندهم مگر به پسترین مردم؟ پس ملک سیاهی را که پشتش گووش و سیناش برآمده بود بخواست و دختر وزیر را به دو کابین کرد و گفت که امشب دختر به دو سپارند، و زنگیان بر آن سیاه اهدب گرد آمده بودند و شمعهای روشن به دست گرفته، گوش پشت را به گرمابه میبردند و با یکدیگر مزاح میکردند و میخندیدند. اما دختر وزیر را، مشاتگان میاراستند و او میگریست چون کسه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لبز داستان فرو